راهکارهای کسب درایی برای رسیدن بر سباق اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همرا در برنامه کسب درایی و افغانستان با عبدالقاهر فیضی از رادیو آنلاین راهبری شم. شنیدن نواندگان و همراهان گرامی در صفحات اجتماعی منصف مطالعات استادی و حقوق افغانستان سازمان اجتماعی صفیح و احای آنلاین راهب بشم سلام و درود و شما بخیر و برنامه کثرتگرایی به افغانستان خوش آمده در این برنامه با حضور کارشناسان و نقبگان ایلمی افغانستان کثرتگرایی را از لبایی ها و مناظر مختلف و بحث و بررسی بیگیرید چشمنداز این برنامه بررسی کارایی ب برای گزار از منادات و حل چالش های اجتماعی فرهنگی و سیاسی در افغانستان است. تا در برای افغانستان طلب افران و در فرطه های کسرتگرایی دست یادید. کسرتگرایی چیست؟ کسرت اقوام افران در افغانستان برای کسرتگرایی فرصت است یا چالش؟ چگونه چالش ها در عطای کسرتگرایی را و فرصت مبدل سازیم و از خرصت ها استفادهی به این عبدالقاهر به عشقی هستم این سوالات را با باشنات علمی برنامه بکنگاشت میگیریم مهمان من در این بحث محترم استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه من معاون امور محسنان دانشگاه قاتم النبیم در غزنی هستم جنو مستاد گرامی به برنامه خوش آمد سلام و عرض احترام خدمت شما و بینندگان موندرنگ برنامه و خاندگاه برنامه, برنامه شما تشکر که زمینه و بحث را فرام کردیم بعد از خدمت شما هستم تشکر جنو مساعدت مواقع باشین بحث از مفاهم آغاز میکنیم نظر شما کثرتگرایی چی است و چی مفهوم محکوم کثرتگرایی به وجود آمده است؟ ببینید پروژه پلورالیزم که در واقع ترجمه شده است و کسر از ریشه پلورال گرفته شده و مجموعه تجمع و یک مجموعه انبوه پلورالیزم در واقع اشاره دارد به ای که در مسیر باورها و اعتقادات راه رستگاری نجات می در واقع متفاوت و متنوع باشد صرفاً راه نجات و رستداری در یک جا و در یک باور و اعتقادات خلاصه نفشه در کلیساهای روم برخی از افراد بودند که همزمان چندین کار و چندین پست را انجام میدادند و متقبل میشوده و تنوع و تکسروی وظیفوی برای یک فرد و یک مقام در واقع از اشتحبه شد به نام پلورالیزم و کسی که این مقام را و چندین مقام را همزمان تصاحب میکرد و این آدم پلورالیزم اطلاق باشد پس پلورالیسم در واقع بر با تکسور باورها اعتقادات و هنجارها اطلاق میشه و در واقع نوعی باورمندی و تفکر است که در دنیای غرب بر از خاصی یک و مبانی های خاصی باوجود آمده است. شکر جنرم بحث اگر این گونه پیش ببریم و دنبال کنیم که با به شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان و تعدد افرام در افغانستان یک افغانستان ایک بلحاظ تومی جامعی متکثر هست شما تکسور اقوام یا کسرت اقوام در افوانستان برای ترویج و نهاد نسازی انبیشه ی کسرت گرایی یا چالش؟ ببینید بگذارم ما در اتباط با سوال اول که در واقع جواب برای سوال بعدی شما هست باشه کمی بیشتر داور و بررسی کنیم وقتی ما از پلورالیزم گرفت میزنیم و صورت به تکسر باشیم از ناری قدرت در دست یکی ازب نباید حمایت کنیم و بلکه در واقع باورها و اتحادات مختلف از نظر سیاسی و ایدولوژیکی را در جامعه پذیریم و این تکسر میتنه به نفع جامعه باشه چیناچ که امروز در بسیاری از کشورها بحث فلورالیسم سیاسی در واقع از توسعه هست را مد نظر گرفته و او را به عنوان یک از توسعه در نظر میگیره. پلورالیزم دوم پلورالیزم نجات و رستگاری هست. نجات و رستگاری بحثش بیشتر در بحث عدیان و مذاهیب وجود میه که به یک نهوی زیر مجموعی از مباحث فرهنگی چون فرهنگ شاخه ها و ابزاری رو و شاخصایی رو که یکی از اون شاخص بحث مذهب، زبان و تنوع قومی و همچنین تنوع اعتقادی را و بحث تاریخ رو درن بر میگیره. وقتی ما در مسئله ادیان میایم بحث می کنیم، ادیان یک سری نقاط مشترک دارد داره و یک سری نقاط اختلافی داره. در بحث اختلافی سوال پیش میاد که بالاخره حق با کدام دین یا کدام مذهب این در اینجا که مسئله بحث از حق و وجود میاید این پیش می که در روز قیامت کدام یکی از پیروان یا کدام یکی از عدیان و معتقدان به یک دین یا مذهبی خاصی اهل نجات و و دیگران مشمول عذاب در اینجا یک سری آدم ها یا پیستا اندیشمندانی بحث از کلورالیزم رستگاری زدن از نظر معرفتی آیا ما میتوانیم خائلی بعد تکثور معرفت و حقیقت باشیم یا نه؟ و عبارت دیگر در تعاروز بین ادیان و مذاهب مثلا آیا حق ارزامن نزد یکی از باورها و اعتقاداته یا نه همه حق؟ در اینجا سه تا دیدگاه وجود دارد سه تا دیدگاه با وجود میهن که این سه تا دیدگاه در واقع میتنم مبنای برای بحث پنورالیزم سیاسی و رزداری هم باش. در بسید مسیحیتی رو مطرح کردن که حق الزامن در نزد مسیحیت و عدیان دیگر و مذاهیب دیگر به خطا رفتند چی بخواب خواهیم چی نخواهیم خداوند در روز قیامت اینا رو مجال ملگراییه نظریه ایش که ملگرایی خواهیل حق الزامن با مسیحیت بوده اما سایر ادیان و مذاهب تا آنجایی که کار درست انجام میدهد در واقع اهداف پیامبر را به صورت ناخودآگاه انجام میده اگرچه ایماری به حضرت مسیح نیاوردن اینا هم در روز قیامت مشمول و بهشت نجات مشمول و عبارت دیگر از نظر رستگاری رستگاری مشمول اینا هم میشه این نظریه شمول نظریه شمولگرایی در دریس نظری نظریه تکثورگراییه که اون چیزی که امروز ما در غرب داریم اونها اصلا ذاتا باور داره که حقیقت یک امر متکثر در نزد یک دین و یک مذهب نیست به عبارت دیگر دین و مذهب یک مجموعه فراخ و وسی و وسیع گسترده بس است که هرکس کس زای از حق را و او حقیقت را درک کند نه همه آن را پس حق می‌تواند در نزد همه ادیان و همه مذاهب باشد. اون چیزی که امروز در غرب بیشتر شر مرز و معرفتیه یعنی از نظر معرفتی آئلی به تکسور حق و حقیقته این سبب شده که براحتی در حوزه سیاست زمینه را برای همه احزاب و دیدگاه‌های مختلف براهم کنه و در حوزه رستداری همه را مشغول نجات میدانه آلا با توجه به اینی بحث مبنائی یعنی که اولا ما در واقع بحث پولورالیز در حوزه سیاست بس میشه در حوزه نجات و رستداری که مسئله مذهب بحث میشه در حوزه معرفت و دانش بحث میشه و در حوزه معرفت داری گرائی، گرائی و دانش سه تا دیدگاهی این شمول شمولگرایی و گرایی به وجود آمدن با توجه به این مثلا ما میتاریم قضایای افغانستان رو مورد بررسی خراب کنیم. یعنی در ای که آیا برای توسعه‌ی اندیشه فولرالیسم، گرایی تکثر قومی و اقوام و مذاهب در افغانستان، آیا یک فرصت چالش هم ما میتونیم در فرصت هم در نظر بگیریم، چالش هم در نظر بگیریم. بس به این دوری که ما قدیم زاویه نگاه کنیم اگر ما زاویه مدرن را در واقعی مدنظر قرار بگیریم از این منظر نگاه کنیم پس نه تنها برای ما تبدیلی به یک چالش میتونه تبدیلی به یک فرصت یا به این معنا که تکثرگرایی میتونه در واقع تنوع قومیتی را در افغانستان باستاب بید اندیشه های مختلف را در افغانستان باستاب بید و مخصوصا این مسئله را اگر از زاویه قویت خارجیت سازیم بگیریم با سمت مذهب خنوهای مذهبی میتونه خودش برای ما یک فرصت باشد در زنده که ما دسبت به هنجارهای کلام در حوضه افغانستان باور مدیم. اما در این حال هر کس میتونه بر اساس امو اولگوهای خودش و در واقع باورها و اعتقاد ها در حوضه مذهب خود برش عمل کنند پس این جامعه متکثرید تکثورگرایی قومی و تکثور قومی در افغانستان و گسترش گرایی قومی در فارسان میدانه در واقع زمینه را برای پذیرشی تکثرگرایی به معنای علمی بی‌تضیع فراهم می‌سازد. مشخصاً مثلاً اگر از زاویه فرصت‌ها و بر نظر شما بر تکثرگرایی و تعدد اقوام در افغانستان نگاه کنیم، به نظر شما مهم‌ترین فرصت‌هایی که برای ترویل تکثرگرایی و تعدد اقوام در اختیار ما می‌گذارد، کدام فرصت‌ها است؟ ببینید خوصتها رو باید شناسایی کرد بحث اینه که ما الان در افغانستان با تکسر مواجهیم تکسر قومی البته حیوان بحث تکسر قومی با بحث پولوریزی بمطار کمی با سخته. سخت و جایی بهتر تکسر مذهبی میار قرار بگرد چون یک بحث اندیشه‌ای هست و یک بحث فکری و بحث اعتقادی ها. و پلورالیزم مخصوس در حوزه معرفت با بحث اندیشه و بحث باور و اعتقاد طرفه را چون اصل ای گپ و بحث تاریخی از غرب با این پس شده که آیا مذهب این بسحیت حقه یا یهود و مسلمانا حق باشه از این مسئله بالاخره ریشه گرفته و آمده در اینجا اما یک ای بحث دیگر را ما دارم. در هر کشوری ما با تکثور قومی مواجهیم و از این تکستور قومی آمدن مسئله تکستور سیاسی رو مطرح کرده. یعنی تعدد احزاب در یک کشور میتوند در رقیق باستابی از توسعه سیاسی باشن و زبانی باشه برای نیازمندی ها و تبادل افکار مردم در سطح کلان و به عبارت دیگر جامعه مدنی وقتی شکل میگیرن تکستور جامعه مدنی در یک کشور میتوند در واقعی نو ای از آزادی بیان و عقیده باشه که مردم در قارب هیز و تجمعات مدنی با غارها و اینکه خود رو در بغداور دولت ابراز می کنن. خطر به چالش بکشنن و این باعثی توسعه رو رو نقشه چرا چون از اون طرف دل مقابل بحثی مشارکت سیاسی رو بدون اتبال داره یعنی اگر شما در یک کشور قایلی به تکسر و توسعه سیاسی شدی سبب میشه که از دولت این حسار شکست شروع و از طرفی دیگه برای دورت این فایده داره که حضوری مردم را در جامعه تحصیبی میکنه و مشارکت سیاسی فراهم میکنه میتونه وجود داشته باشه اینه که اگر ما بخواهیم حضوری مردم در صحنه را تعبیه کنیم و مشارکت مردم در قدرت و سیاست را فراهم بسازیم، یکی از هایی که میتونه وجود داشته باشه بحث مثلا و از طرف دیگر برای پلورالیزم خودی تکثور قومی و این که بلاخره ما مشارکت سیاسی رو در نظر بگیریم به تنه یک مرسل باشه در بخص مشارکت سیاسی از هر دو طرف یک نگاه وجود دارن چی شما باروی کرده لبرالیستی نگاه کنی؟ در واقع در نظام لیبرال دموکراسی حضور مردم در قدرت و سیاست و به عبارت مشارکت سیاسی یکی از امتیازات دولتی سید نگاه و این حضور مردم در قدرت و سیاست و معنای مشروعیتی حکومت در نزد عمومی هم هست. این از منظر سیاسی مذهبی اگر نگاه کنیم، هرچند ممکن است امروز ما مشارکت سیاسی را به معنای مشروعیت تلقی نکنیم، اما در نگاه دینی که امروز یک نظام دینی در افغانستان عرض ارادهام کرده، اگر بخواهد مشروعیت خود را از منظری حضوری مردم در قدرت و صحنه تثبیت کنه یک فرصتش اینه که در واقع برای مردم بحث پلورالیزم را تا حضور کنیم و فراهم بسازیم و عبارت دیگر تکثور قومی در افرانستان و تکثور مذهبی در افرانستان بیتن یک فرصت باشه برای این که پلورالیزم در افرانستان تعبیه شود و سعب پیدا کنه چرا چون حتی اگر شما نظام دینی هم داشته باشی. نظام دینی هم با شکل‌های مختلفی باید حضور مردم در صحنه را تثبیت کند و این حضور مردم در صحنه اگرچه در اندیشه سیاسی دینی و معنای کسب مشروعیت نظام سیاسی از حضور مردم نیست اما حضور مردم تا حدودی حدود زیادی میتونه در واقع پشتیواره محکمی برای نظام سیاسی بشه و به همین خاطر این موضوع سلام و سلام در نامه پنجازه به ما حکومت بر مردم حد دارد یکی از حکوم یکی حکومت بر مردم دارد زمانی حکومت مردم را سر را میخواند جمعه آه به بخواند آه مثلا اصطادگی در برابر فران یکی ما مثلا برای مردم ای اعتبار و شخصیت را اراعه کنیم می تواند توانه پشتوانه محکمیت برای نظام ما و چه نظام دینی و چه نظامی در واقع دموکراتیک باشه؟ تصکن جناب شما اگر با توجه به هایی که در افغانستان وجود داره، فرصت‌های موجود و اساس فرصت‌هایی که امروز در اختیار موجود ما شما هست برای نهادینه ساختن نگاه کثرتگرا و مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان چگونه در فرصت‌ها ها برداری ممکنه از نگاه مزیق و تک‌چردی و یگانه‌نگاری گذار کنیم بستوی نگاه کثرتگرا و مسایدش نمائی سیاسی اطمانستان. ببینید آجاهای محسنی خداوند کنه در بحث پلورالیزم دیدگاه داره. میگی که اگر ما اندیشه تصویب و تختیعه را در اصول فیلیل رشکه نواقی در اصول فیق در واقع در بحث اصولی بین علمای اسلام و جمله اهل سنت این بحث مطرح بوده که مشتهد وقتی اجتهاد میکنه آیا حقیقت ثابتی وجود دارد که مشتهدین بر اساس اجتهاد خود میخواهد به او حقیقت ثابت برسد در این صورت اگر باشد در واقع این دیدگاه و نمودی که پیشتر تحت عنوان نثارگرایی مطرح کردیم از باب انحسارگرایی و اندشه شمولگرایی حق الزامن یکیه اما ممکن راههای رسیدن را به حق متفاوت باشه بعد آجه های میگه که ما یک بحث دیگه ای را هم در روزمان زمان داشتیم به نام به اصطلاح تصویب به این نظر بود که مصطوبه که مثلا به این اصولویی معرض اونا باورمند بودند که هر بیگاهی را که مشتهید با او بوداون حق را بر مبنای دیدگاه مومشهد تهییه میکنه و در نظر میگیره و در مسیرش قرار میده ولی زیرا یک شهید و یک مسیر مرا یک حقر خداوند در مسیرش قرار میده خود دیگه در مسیری دیگه که مرا خداوند که اگر اندیشه ای مخطئه ببخشید اندیشه ای مستویب در برابر مخطئه در او زمان روش میکرد و از بین نظر هم بومس محلل میشد. قطعاً مبنای 20 یک بس بسیار, بسیار, بسیار قشنگه. اما با این همه وقتی که در حوزه معرفت شناسی میایم دیگه ما نمیتوانیم بله فلسفی کلورالیسم را در حوزه معرفت شناسی بپذیرین چرا چون منجر به تخبش و تعارض میشه. جمع از داد میشه واس جمع این از نظر فلسفی غیر قابل پذیرش و عبارت دیگر از نظر عقلی نمیتونه هم یک شایی درست باشه هم یک بشتا زدش هم درست باشه و عبارت دیگر اگر شما هم قایل که خدا هم وجود داره هم نداره هم یکی هم سیتایه هم دودای هم سیتایه این نمیتونه شود پس فدیریش پلورالیزیم در حوزه معرفتی از نظر عقلی خیلی قابل پذیری شد. اما شما زمانی که این به عنوان یک مسیر و با عنوان یک رویش در نظر بگیری این طور بسیار خوبه داشته باشه واران در افرانستان اگر بخواهیم از حوزه این حسارگرای خود رو نجات بدیم و او یکی که خداوند گفتن لکم دین کون ولی دین یعنی در حوزه دینی هم به یک نحوی تکسوری فکری و اعتقادی پذیرفته شده. پس بنابراین پیامبر در اونجا آمده گفته یا خداوند مثلا در زبان قرآن می که اینی شما برای شما دین و برای خودیم نه ما شما را عبادت می کنیم نه شما خدای ما را عبادت می خودم. پس بلاخره این متن برای ما یک بحثی را مطرح بسازه که ما در حوزه سیاست و اجتماع می توانیم تکسور ای در حوزه سیاسی را بپذیریم و از این حسارگرایی بیرون بگوی چرا چون به میزانی که ما تکسرگرائیر در حوزه جامعه و اجتماع و سیاست و حکومت نفذیرین این میتوند و معنای دادن و توجه کردن و کرامت دادن و مخاطبان ما و در واقع به مردم و براییت باشن و وقتی که ما این احترام را برای رعیت قائل شدیم رعیت میتوند در عرصه های مختلف سیاسی و حکومتی بشتوانه ما باشه پس ما میتونیم در واقع اگر عبور کنیم از این مسئله این حسارگرایی برگردیم به با او با بحث گزاره های دینی که مثلا میگه لکم دین کن ولیت دین یا مثلا کن لکن رای و کن لکن مسئول یا نصیحت لعیمتی المسلمین اینا زمانی میتونه در واقع قابل پذیرش باشه که ما تکسر رو بپذیریم چون در اجاق خطاب مردم است یا مثلا در بحثان نامه پنجاوسه ماملی علیه و السلام به ماریب توسع میکنه. شما نسبت به با مردم باید متوجه باشید به خاطر که مردم انسان هستند دو نوع یا کسانی که در اعتقادی با شما مشترک است یا کسانی که در اعتقاد با شما مشترک نیست ولی در انسانیت مشترک است پس وجود ندارد که مردم همه یک دست باشه از نظر اعتقادی مردم متن تنوعی آرا و اعتقادی که قادر داشته باشه اما در این حال ما بر اساس های دینی با حضور نهادهای مختلف از و سیاسی و نزد حضوری باورهای مختلف از نظر فرهنگی و مذهبی رو میبینیم در جامعه بپذیریم به خاطری که امام علی علیه السلام و خلفای بزرگوار راشدین هم در واقع زمینه را برای این به اصطلاح باوری و اعتقادی در حوزه سیاسی می پسندند تشکر اگر با توجه به تعدد آرا باورها اندیشه‌ها و همچنین اخوام در افغانستان نگاهی داشته باشیم به اینکه چگونه از کسرتگرایی و از این تعدد در راستای صلح اجتماعی به کنیم دیدگاه شما در این مورد چیست؟ چگونه چی به حبرداری کنیم از کسرتگرایی در راستای صلح اجتماعی خانم بست و باید به ما بستای مبنایی از روزن مبنایی تو تو تو خیلی زیاد دیدگاه‌های اطلاعات وسیعی می‌بینم که میگه ما در بحثای دینی قطعاً یقین داریم که حق الزاماً نزد یکی از ظواهر فیزیک فیزیک هست یکی از آنها هست با عبارت دیگر حق یک امر ذاتیه حق نیست اما قول احمد در حوزه نجات مرحسگاری، آجنگارهای موسیقی و همکتمی بسیاری از علمای بزرگوار اسلام قایل و تکسر و عبارت دیگر خالت او از او سیطان نظریه انحصارگرایی، شمولگرایی و تکسرگرایی بیشتر شمولگرا هستند علمای اسلام یعنی حق را منحصر میدانه یک دین، یک مذهب حقه و عبارت دیگر باورها و از دستورات خداوند در یک مسیر پاکوب داده اما ممکن برداشت های مختلف از اون صورت دیرسه باشد با این همه با این که حکمون حسیره در روزی قیامت و روزی نجات بخشی بسیار وسیعی از انسان نه فقط مسلمانان، بخشی بسیار وسیعی از انسانیت شامل رحمت خدا نشه و بسیار محدود و اندک اگر بسیار برای در عذاب جهنم مخلط بماند و همیشه دائم و مانگار بماند. با که میهند با چرا؟ چون در واقع خداوند بهیش را در توصیفات خود در قرآن کریم به صورت نکره اطلاق کرده و این نکره میتنه به اسلام وزعت داشته برود اما جهنم را به صورت معرفه بیان کرده و معرفه میتنه بسیار محدود و بسیار کوچک باشه از این رخم شواهید ما میفهمیم که بلاخره از در سرانجام و مخصوصیم که آقای مسلمی میگه که ما یک قصیر داریم یک قصیر داریم سرانجام به دست می آید که بسیاری از مردم جهان مقصر نیستن، قاصره توانایی نداشته که حق و حقیقت را بفهمد. تو آیا اسلام حقه یا مسیحیت حقه؟ در درون اسلام کدام مذهب حقه؟ توانایی چون نداشته قاصر بودن، نه اینکه مقصر بوده باشه تیداد آدم های مقصر که حق را فهمیده و بعد تعمودن مرکنه شده بسیار بسیار اندک تعدادی از علما را در بر می گیره. حتی بسیاری از علما از نظر آیتالا موسینی آدم های مقلید هست چون بورات در مسئله ای و اعتقادات اهل اشتهاد نبوده نتانسته در واقع مسایل اعتقادی و پر وقتی اگر در نظر بگیریم ما در افغانستان می تانیم نگاه کنیم که ای ای می تانیم این رقم دیدگاه ها برای ما یک فرصت و زمینه ای ایجاد کنه ما در واشهای همگرایی در افغانستان استفاده کنیم و عبارت دیگر در افغانستان هم تنوعی قومیتی داریم و هم تنوعی مذهبی داریم از نظر مذهبی دو تا مذهبی کلان و بعد دوباره سه تا مذهب و چهار تا مذهب در, در درون هر مذهب وجود داره و ممکن هر کسی سوال کنه که تعریف بر اساس حق بقیه یا اهل سنت در بین اهل سنت کدام یکی از مثلا دودوران ائمه بالاخره حق بوده های اماممانی امام که مشافعی، مذهبی یا مثلا بالاخره کدام پس بذلارم ما ممکنه بر اساس نظریه تکثرگرایی نه در حوزه معرفت بلکه در حوزه ایستاشمولگرایی و این باور برسیم که ممکن است حق واقعا در نزد یکی باشد اما با این همه همه ما چون تلاش کردیم و او حقیقت برسیم پس همه ما مشغول رحمت خدا هستیم پس همه بتونه به یک نحوی شامل بهش شود کسی در واقع از مثلا درگاه خدا راندن نیست محروم نیست، مشمول عذاب خداوند نمیشه درست این است که ما از ای تیم و او به اصطلاح تکثوری که این انحصالی که وجود داره بهم خود را میار قرار بیدیم برای اینکه ما واقعا حق را درک دید. پس اگر ما به دیدگاه های مثل و کسانی که بالاخره بحث تقریب را در افرانستان دنبال می کند و اندشه های به اصطلاح تقریب گرایانه را در واقع توسع می دید. ما اگر به این رقم موارید تک کنیم مترا در واقع یک فرصت بسیار خوبی باشه برای ایجاد ای همبستگی مدیریتی و همبستگی دینی و این یک ای خوبی که شالانه در پرسمندیش هست. سپردونم استاد اگر بلهوز منازات و بحران در افغانستان نگاه داشته باشیم و بحران‌ها و منادات سیاسی در افغانستان که اکثرند ریشه در این هلار گرایی داشته و ریشه در ان همدیشه های انارگراییان ها شما کارکرد کصدتگرایی برای کاهش بحران و حل منازات سیاسی در افغانستان چیگونه است. می بازم بددار باز تعیق کنیم. کسردگرایی رو ما ممکنه در حوزه معرفتی نپذیریم که حق نظام متکثری را هم قسمی های موسینی گفت تکثورگرایی با این نگاه در واقع قائل به شدن هست و این جنب ضد دین انذری عقلی قابل فیصله تأیید نیست و ما نمیتونیم بپذیریم اما کسردگرایی در حوزه سیاسی و اجتماعی و پذیریشی تنوع آرا میتنه در واقع برای حل مناجعات در افغانستان بسیار مهم باشد اما یه بخصی دیگه هست که تکسرگرایی با توجه ای که اندشه مدرن و تا حدودی اندیشه پست مدرن بر یک سری مبانی استواره و اون مبانی هنوز در افغانستان پانه گرفته و چون پانه گرفته در واقع تذیریش پلورال با این معناه و مخصوصا در حوزه معرفتی برای ما کاری بسیار مشکلی است. اینه قایت الله سبحانی جمله داره میگه که غرب پلورالیزم رو وقتی پذیروفت با دیدگاه قایت الله مسلمی موافقه که پلورالیزم از منظر عقلی قابل دفاع نیست. چون در واقع سریحا جمع زده رو مجاز میدانه. اما بلحاظ راه بردی یک راه بردی بسیار خوبی بوده در عرصه سیاست و حکومت در جامعه غربی. چون بدونیم که در غرب ست سال ما جنگ مذهبی داشتیم و از سال جنگ مذهبی به صورت بین المللی در واقع ادامه پیدا کرده که شمال اروپا یک طرف و جنوب اروپا یک طرف ما منجر شد به معایده و سفاری دستان چونانده چیده هشت دیگه که غرب در واقع پلورالیزم را نه با عنوان یک اندیشه فکری که پشتواره تئوریک داشته باشه, باشه بیم پذیره بلکه به این خاطر پذروفه که در واقع یک راه بردی خوبی از نظر سیاسی و اجتماعی برای حل مناجات مذهبی در اروپا برده با ردی دیگر وقتی در شمال اروپا و جنوب اروپا جنگ بر سر برتری مذهب و حقانیت مذهبی وجود داشته و منجر به جنگ های بین المللی شده سرانجام دانشمندان غربی با اختراع اندیشه پلورالیتی اونان گفتن که هر کسی یک هم حق میگه، او حق میگه، هر کسی حق میگه. اما با این پیش فرض همه حق را نمی تونه، همه حق را به صورت کامل یک مذهب در نمی سنند. عبارت دیگر مجموعه حق در نزد یک مذهب به تمامه جمع شدنی نیست. یک مذهب بخشی از حق را دریافت کرده، بخش دیگر را مذهب دیگر و بخش دیگر را مذهب دیگر همه با حق می باشیم و این رابور سبب شد که در واقع در اروپا منازعه مذهبی مذهبی دیگه در افغانستان نگاه کنیم که بیگیم برادر مثلا افغان مختلف در جامع وجود داره ارزا نمی نتونه که ما بیاییم یک خوب مثلا مالک بدانیم دیگرها رو مثلا اضافی بدانیم یک مذهب رو محق بدانیم دیگرها رو باطل بدانیم نه هر کسی به یک نهری در روکه هر کسی در افغانستان بیگناهی خدمت کرده هر کسی در افغانستان بیگناهی کار کرده به مختلفی اگر موجود دارد درست هر یکی از مذاهب در واقع بخشی از اعتقادات دینی را جنبه می‌دیدی داخل در حوضه شراکات مشارکتات داریم یه قرآن شریف بین ما مشترکه حضرت پرابر مشترکه و خداوند واحد مثلا همه ایمان داریم یعنی مسائل وقتی مثلا همه ما نماز می‌خونیم همه ما روزه می‌گیریم اگر چی در جزئیات نماز روزه هم کمی تفاوت و مثلا در واقع در سن این که و مشروع حذیریش این با عنوان یک رابرد هم در حوزه قومی و ملیگرائی و هم در حوزه مذهب و در واقع مذهبگرائی مثلا با عنوان یک رابرد خوبی برای حل منازعات موجود در افغانستان بودشتن و افغانستان این روز باشد تشکل جنابستاد اما اگر نگاه به افغانستان داشته باشیم، اکثراً بحران ها و منازعات سیاسی و اجتماعی در افغانستان ریشه در چالش های اجتماعی پرهنگی داشته و ریشه در منازعات مذهبی و دینی نداشته نگاه شما در این مورد که چگونه از کسرتگرایی به معنای اجتماعی و اجتماعی در راستای حل بحران از نظر جامعه شناسی عامل گوشتاست در افغانستان 5 6 عامل وجود دارد دو تا عامل عمدش یا سه تا عامل عمدش یکی مسئله مذهب یکی مسئله قومی یابون یعنی مذهب هم نقش داشته نه که مذهب هیچ نقص داشته شما در جنگ های گذشته در نظر بگیرید مذهب یکی از مکانیزم‌هایی است که به عنوان عامل گوشتاست در افغانستان در واقع حضور داشته اما تره کارش باشه ببینید یا ما بر اساس جدید و موفر باید پلورالیز برای بپذیریم یا بر اساس اونگوی سنتی خود ما تکیه بر مسائل دینی کنیم اما این مسائل دینی باید مسائل بروزی روزی باشه یعنی در واقع مردم آباهیش که نسبت به عرضش های دینی توسع پیدا کنیم اگر مردم ارزش‌های های دینی را درست بفهمند و در واقع هنجاره ها و انعنات را که ما در گذشته دینی داشتیم از نز مثلا فهمبر گرامیسلام و راش این میتونه در واقع راها کشا باشه و این منعا که ما در زمان خلفای راشدین بابرها و اعتقادات مختلف در, در کشور در, در حوزه اسلامی داشتیم ولی اونا زندگی خود را میکردند و جرمی تفاوت اعتقادی و باورهای مذهبی اونا مجازات نمیشدن اونا اهلی بایستیدات زندگی بیدن در واقع جزه خود را میدادن اما زندگی میکردن حیات داشتن ابلاخره امنیتش دولت میکرد پس بنابراین اگر ما باورهای دینی را تقویت بسازیم که لکم دینکم ولی دین حتی اگر اعتقادات مخالف را هم در کشور داشته باشیم بر اصلاسی دیگاه ما میتونی بپذاریم اگر این را مثلا نمیپذاریم بلاخره روی کرد مدن را بپذاریم که در واقع در اونجا بر اساس اصلاس ای با اصطلاح آرای مذهبی و در واقع استعالت باورهای اعتقادی میتونی زمینه را برای ما فراهم بس چون هر کسی از رو حقوق بشری هم که نگاه کنیم عمو بحث آزادی بیان و آزادی عقیده رو ما داریم آزادی بیان و آزادی عقیده در اسلام به بهترین方式 در واقع تصمیم شده از جمله اگر برگردیم به مثلا نامه 53 امام علی علیه وسلام. و بهترین باشی این تنوع آرا و اعتقاد را پذیرفته پس اینا برین در زمان خلفای راشدین این وجود رو داشته و وجود داشته اگر ما ارزش و بارمندهای دینی خود توسعہ بدیم و دوم های دموکراتیک و مدرن رو هم می‌پذیریم تا اونجایی که مثلا های دینی ما منافات نداره و تعرض نداره این متره در واقع راهکار بسیار خوبی برای حل مناجات در افغانستان باشه اما ایراد رو تأکید کنیم که مراجعاتی که در افغانستان وجود داشته اگرچه بیشتر مسئله قومیتی داشته اما خصوصا مسئله‌ای قومیات مسئله, مسئله مذهبم وجود داشته شما در همین مثلا 20 سال 40 سال یا مثلا در زمان جنگ امیر عبدالرحمن خان و بعد بعد مسائل امن همه اینا رو به یک نهادی میکنی اگر و ملموس بده برای. که استاد قبل از فرهنگ سیاسی، دستور نظر شما رو داشته باشم در ارتباط کسردگرایی که مناظرات در افغانستان معمولاً بیشتر در فرهنگ قبیله‌ای و برتری قومی دارن در اکثر موارد چگونه ما فرهنگی با استفاده از یک فرهنگ سیاسی همشمور در افغانستان معرفه کنیم و ترویج نماید که تا از فرهنگ سیاسی قومی گذاره داشته باشیم ببینید ما اگر صرفاً مسئله افغانستان را عنوان یک کیس در نظر نگیریم هر کشوری که با کمبودی سباد و فقر دانشی مواجه هست در واقع با این مشکلات دستبنجه نرمی کن و با عبارت دیگر بر قومی نه با عنوان یک باور و اعتقاد بلکه ناشی از میزانی ناآگاهی است که مردم افغانستان با آن دستبنجه نرمی کن و میزانی که آگاهی و دانش و مخصوصاً علوم در واقع انسانی در افغانستان توچه پیدا کنه بسیاری از تسلطات ناشی از قومیت و مذهب و زبان و سنت کاهش پیدا می‌کنه. پس راهکاری که متن وجود داشته باشه اینه که ما بحث دانش و توسعهی معارف در افغانستان را فراهم کنیم از طریق ابزارها و وسایل و رسانه‌های گوناگونی که الان وجود دارد در استاد با عنوان بحث امروز با در نظر داشت تحدود در افغانستان چیونه برای گذار از منادات و حل چالش های اجتماعی سیاسی و فرهنگی در کشور از کسرتگرایی استفاده محصه رو مفید کنه ببینید این مفروضی برای اینه ما کسرتگرایی رو یکم رو مصبت در نظر بگیریم و بعد برای استفاده از آن از چی میکانیزم استفاده کنیم یا چی برانگاهی رو باید توش سر ولی ما شما رو مثلا اینکه اول باید نپذیریم گرایی یا عمر مصبت هست یا نیست خبتیم که کستتگرایی شعابات مختلف داره در یک قسمتش از نظر بابرهای دینی قابل پذیریش نیست از نظر معرفت شناسی اما با من یک راه اگر در نظر بگیریم بجانی یک مثال بزنیم شما وقتی از دموکراسی گپ میزنید دموکراسی را اگر با عنوان یک روش برای نوی حکومتداری از طریق رأی اکثریت و مردمی در نظر بگیری، هیچ نداره نداره تنه در واقع با مسائل و انجارهای دینی قابل جمع باشد. اما اگر دموکراسی را به معنای دموکراسی لیبرال دموکراسی در نظر نظرگیری که در اونجا حاکمیت مردم در برابر حاکمیت خدا قرار داره و مشروعیت از مردم می می‌شود و مردم اذا بر اساس توافق آراء یک قانون رو امروز بشه ایجاد قانونی بسازه یا قانون رد کنه مشروعیتی قانونی مثل مثلا مشروعیتی نیست به یا مثلا مخالفت با آن با عنوان مثلا رأی مردم در نظر گرفته شوه این یعنی این مثلا بمب اردش هایدری قابلی جمع نیست دموکراسی حالا کلورالیسم همین مشکل دارد. داره اگر شما پلورالیسم در حوزه‌ی معرفتی در نظر بگیری هیچ نمیتونه با باورهای دینی مقابل جمع باشه و خاطر اینکه در بسیاری از موارد، خایلی به نیستا چیه تضاد ده شما از اگر پدیروسی که یک مذهب حقه یا مثلا اسلام حقه عزیز دامن نمیتونه وقتی اسلام حق باشه، بسیعیت هم حق باشه، یهود هم حق باشه یا عدیان حق باشه در مقابلی چیه یک راه با با اون مشکلات افغانستان حل کنیم یعنی این تکثری که در خراسان می‌پذریم چون اقوام همه در دایره دینیه. این تکثری مذهبی در خراسان می‌پذریم چون هر دو بالاخره دایره الله میگه هر دو مثلا با استفاده پایروی حضرت اختلافی از فولورالیسم استفاده کنیم این متا در واقع یک مکانیزم تناکم دین توکم والیات یا مثلا كلكم راء و كلكم مسئول عن که می ما را بیگ نه وادار کنه که در برابر حکومت موزه بگیریم این موضع را ما زمان میتونیم بگیریم که ما در واقع بخش از حق را داریم و در واقع جنبه دیگه‌ای که از طرق لاهای بعد از الانفس الخلائق اینا میتونه در واقع به با این معنا باشه که ما یک خدای واحد رو داریم یک مشترکات داریم اما در عین حال یک سری حوزه‌های اختلافی هم داریم که اون اختلافات با این روشیش به اشتراک قابل حل باشه تشکر جناب استاد رو که دنبال می‌کنیم ما شما در حقیقت مواحظ راهبوردی هست کسرتگرائی را به اینوان یک راهبورد محرح می سازن در افغانستان بله حاضر راهبوردی اگر آخرین جنبندی رو داشته باشیم در کنار این جنبندیی داشتیم بله حاضر بیشتر دیدگاه معرفتی بودن بله حاضر راهبوردی از کسرتگرائی چگونه برای حل بحرانها تاهیش چالش سازگاری در افغانستان، سازگاری میان اقوام، سازگاری میان مذاهیب سازگاری میان فرهنگ‌های متفاوض در افغانستان استفاده کنیم. به این یک یک بود به این معنی یک بودی نه به این یک درست است. ببینید ما در شرایطی جهان شدن و گلوبالیزیشن افغانستان نمی‌تواند یک تافهی جدا باسته از پایکرهی نظام جهانی باشه. برای اینکه در واقع ما قدره با نظام جهانی ویفت داده گفت و از دستاوردهای جامعه بشری برای توسعه افغانستان استفاده کنیم نیازمندی به مبادله اطلاعاتی و فرهنگی و اقتصادی و تجاری با دیگران هستیم پس در این صورت با توجه به این بولورالیزم به عنوان یک راه برد میتونه در واقع حل مناجعات قومی و مذهبی ما را در پیده شده و ما اگر بخواهیم در افغانستان پیروز کردیم، موفق باشیم با یک کشوری از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی، بایستا کشوری قوی و قدرتمندی داشته باشیم نیازمندی به با هستیم که در واقع صداهای متنوع و متکسر را بپذیریم. چی از آدرس قومی و چی از آدرس مذهبی پشکر جناب استاد رمضان علی فساحت، فساحت دانشگاه و معاوینی بی امور معسلان دانشگاه خاطم النبیین از حضور ارزشمند شما در برنامه کسترکیره ای و افغانستان از اینه که پرسه را در اختیار ما و همچنان بینندگان و شنیمدگان ما بودشت پشکر شما هم محفظ بشت و همراهان گیرامی از حضور شما و از همراه شما در صفحات اجتماعی رادی آنلاین را حضور یادکیا سپاس تا دیدار دیگر شما را خدابنده متوالم است وقت